عاقل چون خلافن در میان آمد بجهد و چون صلح بیند لنگر بنهد که آنجا سلامت برکران است و اینجا حلاوت در میان مقامر را سه شش می میباید ولیکن سه یک میآید هزار بار چراگاه خوشتر از میدان ولی که نسم ندارد به دست خیش انان